بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صل الله, عليه وسلم الله. على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا إله إلاهم إشمعي بخص در باره مسئله احساسی مطلب و مقاید بود که اون حمله مطلب و مقاید بود, بود بیوز و بیروس و شد که این مسئله در دنیای اسلام ابتدا بشه که قرآنی به رشن از آیات و قرآن به این نظر معنی این مطلب و مقاید البته انه هایتون فرق می کنه مثلا در خون در یک جا عنوان حرام علیکمون میتوه از دم داره که مطلق و باز در مورد خون جایی دیگه در لاعظه هرمان علاقه هرمانیت فرمان در لاعظه میتوه در دم مصروح ها دم رو مقید کرده به خون ریخته شده سر مصروح نه که متخلف از در او خب اینجایی بحثی شما هر هرمه می میتن مغییت میشه به در محصول یا دو با خودشون محفوظن اونه هم مطلقه این هم مغییت به خود حکومیت داردن همچه این در جایی که هرمه بیه به عنوان فردن و اما در های دیگری که به کنوان نباشن مثل همین آیه زهار در آیه زهار قیل شده ببینیم که بنده شده که رفت باشه و بعد از مروض مرقبه هم هست اما در کفاری قبل قید مؤمنت بیش نداری یا به هسته پیش داره بیش و مضاقر این که در کفاری قبل اتعام نداره رضا اده اصغای اهل سنن قادل به حمد مطلق و مراید در ایدو شد یکی جباب زهای یکی جباب قبل بلکه با تعمال در کلمات اهل سنن معلوم میشه بخص مصدر و مقیم در آن رو به اتصاص و احکام ندادن حتی در مسائلی که جنبه حقای دیگاره مثل بخص ارتدار چون آیات با هم یک مردار تفاوت دارن کارا میشونیم که تفاوضیون از این خود کتاب میخونم <تصفيق> <تصفيق> اون حمل مطلق برموحیت کردن ادهی هم در اون رو باز حمل مطلق برموحیت مکنیم وقت نسبت به روایات هم این مطلب وجود داره برگرد روایات به اصطلاح از یک جرد اطلاح داره برگردیش ترید اینکه این بحث معروف هم همه مطلقه از همان حوائل در بیان صحابه و غیر صحابه را مکرد شد و دیروز از تردیم طبیعت این بحث ها این طوریه. اول به عنوان نتیجه فکری مندر می شد بحث شد بحث حسولی ناسا گفتم اینکه گفتن این با در تفاری ذهار و قبل هر دو با مؤمنه باشه اینکه در یکیش مؤمنه بودی که شامل این بحث فقهی بود بحث اصولی الان بحث کلیه حمل اصالت بر مغایر بود من دیروز توضیح کامل راجع به این جعل از کردم و توضیح دادم که حتی یک مثال واحد یک مورد واحد رو میشه قدین بحث اصولی قرار داد و همون رو میشه در بحث فقهی قرار داد این که در کنمات اصولی مسلم در امباس اصول آمده نیست یعنی به عبارت دیگر اگر موردی بدخور کردیم میشه مسئله فرقی اگر کلی بدخور کردیم میشه اصولی کردی مثلا همون درم مصفور اگر به شکل کنیم لاحقی تو فیما اوییه لگه ما هر و من علا تا همینیت همون بگیم این آیه نوارد که به غنیت خانمیت اما اصلا ناظره به مرام عکله اصلا این فقط عکل در نظره که قرمت عکل و حلیت باشه الا هم یکون دمم محصول ها دم محصول به اصطلاح این حرام، اولا غیر محصول باشه دمی که در لابلای گوش هست لابلای ضبیه هست اون جای هست اما هر رو معلیکون میتر از درم چون اونجا تحریم روی عکل نیست تحریم مطلبه بگیم اصولا و عبون نداریم اون هر رو معلیکون میتر و درم درمی که در اونجا آمده این تحریم نازر معنی درمیش محرومیته ازاسه محرومیتش شامل عکل هم میشه اما آیه مبارکه چون آیه عکل و جدا آورده بیشتر نازر از محرومیت از جاعت دیگه فرص محرومیت به لحاظ نجاست محرومیت به لحاظ فرصمی که حرمت بیر محرومیت به لحاظ مانعیت نماز من در نتیجه اینجور تکشیر بکنیم بگیم یک آیه مربوط است به محرومیت و اون به اطلاع مطلق درد یک آیه نادر است به عرق و اون خصوص در مصورد اگر آمدید ما اینجوری معنا کردیم و این اصطلاحاً میشه مسئله فرقی یعنی این که بگیم اینهایه معنای اینهایه اینه این میشه مسئله فرقی نمیشه دیگه مسئله اصولی پس بنابراین دقت بکنید که به مسئله اصولی و مسئله فقهی کاملاً واضح بشه که کجا برخورد برخورد به اصطلاح فقهی و کجا در کل در کل اصولی این بر به مسئله داره اون که میشه اون موردی میشه اصطلاح بله اون موردی میشه و اون دیگه اصلا از مسئله مطلق و معید و این حواله خارج چون البته است کردم در این کتاب مثال های نسبتاً بدی نپده باز از مثال هاش رو مثلا از همین مثالایی که اینا آوردن و زاکرین این الله کثیرن و زاکران در باب زاکرین قیده به کثیر آورده اما در باب زاکرات ناورده این هم از قدیل مطلق و مقید مخاطم این ارزو کنیم که اینها اصطلاح مطلق و مقید رو توسعه دادن اختصاص به مواحث بله مواحث فتری اون جاری که اشتباه نشه این مثال در مسائل کلامی بود فیداشت بکنم مثال ها زیادش کنیم مواردی که این ها برده. این کتاب از بحرال که هم خب قشنگ جمع کرده خیلی مثال دو های پراغام به متعدد بعضش باید شهر بدهیم خیلحال این مثال دیگه چگران محل کلام است. ما زیرود عرض کردیم به که یک نکته‌ای که از شد که در بحث در بحث مطلب مقیم از همون قبل دوم بسند یعنی از رفتی که مسئله یواش واش اصول شد این روز این رو کردیم غیر از مسئله خود مطلق و رو که یک بحث لحظی گرفتن چند تا مسئله زمینی دیگر هم واده بحث شد یعنی این رو دقیقا کنید لازم نیست که همش بحث مطلق و باشه مثلا آیه ای رو که در کفای غرض بود با آیه ای که در کفای ازدهار بود با هم دیگر رفت دن. با اینکه که به نظر خب دو تا موضوع تو آیه که در کفاره زهار بود که کفاره زهار مرکب است و همون حکم در کفاره افطار ماه بود البته در کفاره افطار ماه رمضان در روایات احل سنت نه سنت هر تحریری شده بنابراین آمدن روایت افطار رو با آیه زهار یکی گرفتن و در نتیجه قائل به تحریر شدن تو کفاره ماه رمضان افطار ماه رمضان شد که در بحث مطلق و که این آیانه حصولین اهل سنت و حضن من حیث یک نقطی با در نظر گرفته بشه که یک مقدار بحث اسات بحث در یک جهت کلامی جهت لفظی که مطلق هم در معاید بشه یک جهت دیگه هم در بحث وارد شده که اینا کلامی لفظیه صرف نیستن مثلا من دیدو سوزیه کردم یکی از مبارثی که در ذهن وارد شده مسئله قیاس در قدیه از جا اهل قائل به قیاس هم زود منتقل کردن دو تا حقوق مطلق مورد با اینکه که رفتی برکوزار با هم ندار این یک نقطه و دیروز توضیح از خرده که اونجایی که پای قیاس مطرحه خالی نقاهی ماها به اطلاع با اهل سنت مخالفت اساسی داریم مخالفت مذهبی داریم مخلوق دو که این در کلمات احل سنت و ما هم آمده جاهایی که مقید به صورت دقیق به صورت محکوم وحثه مثلا میگه فرغنم زکاتون بر میگه فرغنم سالمت زکاتون و این باز معنی در این میشه که آیا محکوم وحث مطلقا ثابت هست مطلقا میشه یه که بر اون مصطب قائل بودن ثابت باشه پس اضافه بر وقت مطلب و مقید با دنبال مطمون وقت هم رهند این بحث دومی که در این مسئله ارتباط گذارد مسئله ثومی که در این مسئله ارتباط فیدار کرده مسئله این است که آیا این وقت در بحث آم گذارد در اینجا کمتر متعرض شده اما خب در اینجا آنو هست در بحث آم گذشت که اهل سنت قائل شده بودن که اگر آم مقدم باشه خاص مقدم باشه اونجا قائل به نسخ بشیم ولیدار بحثی به نام دبرانه بین تخصیص و نسخ پیدا کردند. اما ما که قبول نکردیم در بحث آم گذاشم بحث شبیه اون بحثم سعی کردن تو مطلق و مقید بیارن در نتیجه در بحث مطلق و مقید بحثی رو که نمکتر کردن که آیا لازم از تاریخ رو بدونیم یا نه اصلا اول بوده بر مقید بوده مقید اول بوده بر مطلق بوده در زمان والد بودن یه بس هم راجیب تاریخ این بس تاریخ و تقدم و ترخور در مسادر اصحاب ما نیامده و این تکیه نکردن اصلا روی این بس تکیه کلی نکردن خود سنیا هم خیلی ضعیق برگشون برخور کردن در اینجا این بحث رو اونا خیلی پیش نکشیدند. این هم نکته سومی به لحاظ تاریخ و آشنایی با این حلیه نکته چهارم اینه که چطور شده که آقایان مثلا در بحث آم خاص به اصطلاح این بحث حمل مطلقا مقید نه بردن یعنی اونجا یه قبول کردن اما در اینجا مطرح کردن این سرشینه در بحث عام و خاص چون سریع در افراد اونی که میاد محسس خارج میکنه خب تضاد سریع باش داره اما در ما نحنفی چون مطلق درازه ماهیت میکنه سریع در افراد نیست ازای رقب این سریع نیست کل رقبه چون سریع نیست در افراد لذا بحثش در اینجا با بحث آم فهم این راجع به مطلب در این قسم مطلب سبونی که ما دوزه از کردیم این بود که این بحث وقت اصولی شد سعی شده به لحاظ اصولی قالبهای معینی رو ارائه بدن توی بحث اصول قالب اعرائه مثلا بفتن یا حکمشون مختلفه یا حکمشون واضده یا سبب مختلفه مثلا سبب مثل انظاهرده فهرده انظاهرده فهرده فهرده فهرده, فهرده. اصلا در یک جا که رقب مؤمنت ساز کنه قتل یک جا که نیست مثلا زهاره زهار و قفل دو تا سببه یا سبب مختلفه یا سبب متحده هر دوی منفی هستند، یا مثبت هستند، یا یکی منفی یکی مثبت. همین تقریبی که کردن، از کردن ازده این اضافه کردم که حکم وضعی حکم تکلیفی این بسمت هارن ازده ای آدم یادم رکنم کنم شد دارمه یکی از نکاتی مال بحث قبلیه یکی از نکاتی که اینجا ادهی از اهل سنت اضافه کردن آمدن عرضیابی خود دلیل رو به لحاظ مقدار و جیهت حساب کردن اینم ما نداریم مثلا اگر مطلب و مقید ما هر دو مثلا حدیث متواتر سهیم باشه یک جور نتیجه گرفتن یکی سهیم باشه بلا که متوافر باشه باز جور گرفتن یکی جگه زعید و منجبر باشه یعنی گفتن ما بیارم ارزش بدیم به دلیل مصلح و مقید ببینیم اینها در چه درجه از وجیهت هستن این رو در کتابهای ما نهیم در درد از مسادر احسان هستن. نسان این بحث و میرا دارم توس بشید باشید این راجعه بگید پس بنابراین بر در حقیقت در بحث و اصولی سر شده رو معینی حرکت کنند. این در میان اهل سنت هم هست، های ذکر کردن. در علمای متأخر ما هم، تا زمان ما هم من دیروز اجمالاً کلمات مرحوم استاد رو خوندم، چون خیلی دیگه نیاز روی مسئله نبود، به همون مقداری که اشاره کردیم و تقسیم بندی که مرحوم استاد کرده، اکتفا کردم. اختفاقه. لکن انصاف قضیه با تمام این تقسیم بندیایی که شده، اون نقطه‌ای رو که من دیروز عرض کردم در نظر داشته باشیم. انصاب قدریه با این قالب هایی که شده هنوز ادهی از موارد با اون حالت فقهی خودش باقی میمونه یعنی معلوم نیست مسئله مطلق و مقید درش مطرح بشه این رو دارد کردیم همین آیه مبارک که اینجا موردن چند نفر دهر سنن فصل وجود وجوه اکم و ایدی اکم اله مرافق مرافق مقید شده تا حد مرفت لیکن در آیه تیمان فرمسه رو به وجود کن و حیدی کن تقیید پیدا نکرده به حد مراقب گفتن مطلق هم در مقید این که مطلقه هم نکنیم تا مرفه انص شد که این معلوم نیست این نهوه استدلال ها اصولا درست باشه اولا قاب تیمان غیرت باب وزوز قیاس اهنده همه آخر درست نیست موردش شرم میکنه و ثانیان انص کردیم در آیه وزوز در موهای وضوع کلمه با نداره فخص رو به وجود اکن و ایدی اکن اما در قیمم با داره و با طبق تقریب های خاص خودش دلالت وقت طبیعی روزی میکنه اصلا نسبت به بشت تقریبا در قیمم یک ثبوم وضع یعنی از قصات مو از این اول صورت تا ابرو یک ثبوم از ابرو تا حدود بینی یک ثبوم از بینی هم تا شانه یک ثبوم ما در باق وض تمامی این قسمت رو می اما در ما به یک سبقه چون می در باقه تمام، در باقه یه و همینکاره سه عضو معروف از انگشتان تا مفصل هست تا این چیز منظر زند هست از زند تا مرفر هست از مرفر, هست از مرفر هست تا خود مفصل و کتر هست یک سبقه تقریبا در در باقه تمام محسل میشه مثل وزو. این نقطه شنقطه این باره این اصلا جا این که ما شک میکنیم برگردیم با آیهی که در مورد وضوح هست این موردیش درستید این توضیحاتی بود که دیروز گذشت و این هم ادهی از موارد اون نقطهی روی که من صابراً در بخش تخصیص گفتم در روایات اهل بیت محسوس هست و یه اوقات قیل نید توضیحه در واقع مثل المومنون انده شروع که الا شرطن احل و حرامن و حرم و این در روایات اهل سنت این الا شرط نه نمید توی, توی روایات اهل سنت از کلمات عمر آمده از صلح جایزون بدن مستم حرامن، او حرامن اما در شرط نایدم در صلح از او دیدم از کارم خدمتون که اما در روایات اهل در شرط آمده این قیب نیست این تفسیر شرطه اینم باز یک مشکل دیگه که ادهی که از, از موارد تحبیر شده از اونا ها و آزوان موارد مو... به مطلق و مقیدی یا آن در حقیقت از دائره آن مخاص خارج هم. اصلا میخواد دیگه شرط این این نه اینکه پیغمبر تقییم فرمول طبیعت شرط در مکلف قرار میگیره مکلف میتونه شرطی رو انجام بده که با قانون مخالف نباشه ها این معنی شرطه نه اینکه این حالا اون بحث مشرده خودش مثلا این ببینید شرح کلمه شرطه و لذا اگر این تفسیر رو ما بگیریم مثلا فرستان اگر در قانون ایران آمد که شروط سریعه خواهی نخواهی مراده شروط اون چیزی که اهل نهرامه و اهل نباشه این طبیعی شرطه این به اعتبار این که و اهود و نزور و این اینجور چیزها اینای التزام شخصی هست یعنی انسان خودش التزام میری التزام شخصی باید خودش برسه به انزای شارع و ارزش نداره نمیتونه انسان ایش چیز جعب بکنه باده مطلط و حق جعب نداره پس باید برسه به انزای شارع بین تفصیل و و نه اون یه دفعه میشه که بگیم پیغمبر اگران تقییر زدن مثلا شرط مخالفه با کتاب مثلا یا شرطی که مخالفه با یک من باب مثال مثال شرطی که مثلا, شرط مثلا ابهام داشته باشه مثلا نهن نبی و این نهن نبی و انمقرد پیغمبر تفسیر زدن تفسیر تجارت انترازه این تفسیر نیست این تقییره چون ظاهر آیه هر تجارتی که از ترازی باشه صحیحه حالا من میگم آقا این کتابم ارزش مندم به شما فروختم به 7000 داره من ممکن یک کتاب باشه 50 داره بشه ممکن یک کتاب باشه میلیون وقتی ترازی داریم باید درست باشه. را من؟ چه به قاضی بود درست بشه من قراردادم بیمه قرار نگیره قرار و میشه معامله مبنیت بر من اقرار کردم ببینید تجارت انطراز مختصر تجارت مطلبق تجارت انطراز من رایام الان هم در غرب همین تطور هسته اون انواع قارها اون که در غرب میشه چون معاملات قراری قبول میکنن اصلا یکی از عوامل اساسی ثروت جمعچن ثروت در دنیای ق همین معاملات قراری من پامداد صاف ص یه معاملات, معاملات, صاحب صاحب. <تصحیح> معاملات که ممکن است یک دفعه مثلا ده میلیون از دستت یا ده میلیون به دست بیاره اصطوراً ریسک میگن اینجور معاملات غربه اصاس جمعه ثروت و جمعهوری ثروت در برده خب تجار در هم ظاهرش هم میتونه ما هر دو راضی هستیم این کتاب رو مجبولاً میدیم به طب مقابل در مقابلی پولی ممکن که لذا نهن نبی و هن این در حقیقت یک نوع تقییده تقیید تجار در انترازه در بحث مکاسه برسون باشه مروم پتیفی هم قائل شده به اطلاق آیه گفته نه اگر راضی باشند در اون جهل به به وزه این اشکال درسته ما اطلاق آیه همینطوره حق ایشان. اما روایت داره نه نبیان و دلن. اگر نه این غیر از الا شرطن احل حرامنه این زرافت کار روشن شد شرطن احل حرامن تفسیر قانونی شرطه نه تقیید حکمه امام دارم می کنم بشر اینجوریه اگر یک قانونی آمد اختیار رو دار در عده‌ای از در اختیار افراد، در اختیار مکلف، در اختیار شهروند این اختیار رو تا است که با خود قانون تمام پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. پیدا معنا که که شما میتونی هر کاری اختصاص بکنید، با شرط یا درستش بکنید، با نژ درستش بکنید. شما بیا با نژ مثلا نژ بخونید که شراب بخور، تمام محرمات و احکام شرعت با نژ اصلا عدل نزول چین معنای نداره عدل شروع چین معنای این در حقیقت تفسیر شرط یا حالا اگر خواب چیز داریم بالاتر تفسیر التزامات شخصی و اعتبارات شخصی قانون میاد بگه شما حق دارید یکی از امور رو برخورتون الزام بیارید التزام بشه اعتبار بکنید لیکن این اعتبار حدی داره حدش این است که به خود قانون تنافی پیدا نکنه شما حق ندارین در آدم شخصی التزام بدین خلاف قانون رو از او برو برو بود طبیعت او برو بود تا اونجا است که این خودش امر شخصیه خب من به شما میرون روخم بترداد این امر شخصی شما تا است که با قانون تنافیه پیدا نکنه اگر من شد بیاد در مقابل قانون بیدیسه دیگه خواهی نخواهی او امضا نداری پس در حقیقت خوب دقت بکنید شاید در حدی از موارد تغییر نباشه در حقیقت یک نوع تبیین باشه غیر از تغییر مصطلح این مثال این دوتا هم میتونم که برزن رو روشن بشه حالا بعد بیان این مطالب پس اینا آمدن غالبه های رو کردن و طبق اون غالبه ها سعی کردن که مسئله رو حل بکنن این ما به جهاز یکی که اون غالبه ها رو حل کنیم یه نکته اول عرض بکنیم در کتاب اهل سنت چون این در کتاب های ما مثل مرموم استاد دیگران نیوردن من از کتاب همین البحر المحیط بله در سفره چارده رد در جلد سه ایشون آمدن البته اینا همه اینطور سال اتباقی باشه به مثلا اهل سنت خیلی اما آمدن ایشون شروع رو نه کردن که اول برای حمد مطلق برماییت چون این شروع در کتاب اومانه آمده برمیز اطلاعش از مسادری که در این مدت شده از افرادی که شده شرط اول به تحبیر ایشان که خب درست در قدیه از موادش قبول شده اما به اطلاعش معلوم ایسالا قبول کرده ایش که اینا ببینید ما در جای هم به مطلب وارمقاید می‌کنیم، خوب دقت کنیم که یک ذاتی و صفتیه در یک دلیل ذات بیا، در یک دلیل ذات و سفط بیا. اینجا هم به مطلب وارمقاید می‌کنیم. مثل اتاق راه‌دادن، اتاق راه‌دادن مؤمنه. مثل مثلا مثل. یک آلخمر نجسون، آلمسکر نجسون، می‌باید مثال. یک ذاتی تو یک سفطی. اما گایی اوقاتی مطلق و مقید ما از این قبیل نیستن ما میخواییم با تقیی یکی رو اضافه کنیم این مشکل داره دقیق رو مثلا در خایی زهار کفاره زهار و کفاره قبل یکیش مومنه یکیش مومنه یکی رقبه یکی مومنه رقبه مومنه یکی قصل یکی زهار دو تومونه ما یه این آیه که مدرگ بطفی فتح رو رقبتن مراد مومن هست به درمی آیه ظهار خیلی بود اما در همین آیه ظهار بعد از این که رقب ممکن نشد اتحام ذکر شده تو تفارقه هست اصلا اتحام نیامده بس این که آیا اینجا هم هم در مطلقه هست مقاید میکنیم اتحام نیشه اصلا در تفارقه هست ذکر نشده که دقیقی همین رقبه در هر دو در شده در یکی شفت داره شفت مؤمنه که چند داره میگن اونی که نداره مطلقه همیش کن برمقیق میگن اونجا هم باید مؤمنه خیلی بود اینجا ما با همد مطلقه برمقیق یه به اصطلاح نقطه رو اثبات کردیم یک سفتی رو اما در آلیه اظهار اطعان هم داره بحث اطعان کلن توی که خالقه نشده. میگن یه اینجا همه به متنبه امایت میشه کردیم در کفای قفل هم اطمام هست. همه نسالی که الان دادن این برگیرین نسال. در آیه تعمام، در آیه تعمام ترسه بود به وجوه کن و ایدی کن. ایدی در اینجا مقید نشده. مطلقه. اما در آیه وضو مقید شده. در آیه وضو زیر شده ایدی هکم علم مرافقه. دلوقت. اگر هم به مطلق برمغیب کردیم اون سفر که ایدی به اصطلاحشون زاده این زادیه که حقیقی داره کرده که مرافق باشه این تو تعمم نیامده دقیق کنیم ما دیگه میگیم در تعممم فلسط رو به وجود کن و ایدی کن و ایدی کن این این ممکنه این کشون میگه این ممکن, این ممکن. اما درهایی وضوع قیل از قسل و و یدین مصح رأس و رجلی نم شده. در آیه وضو 4 عضو ذکر شده. دو عضورش تو آیه عام آمده. یک عضورش که در آیه عام آمده در آیه وضو محدود است تا مرافق، در آیه عام محدود در اینجا ممکن است کسی اینطور بگه در اون جایی که در آیه عام محدود نیست به قرینه آیه وضو می‌خوام راهنمایی. ممکن است حال تحول بشه. اما بگیم بگیم دو تا مثلتی هم که اصلا تو آیه تهمون ذکر نشده یکی سر یکی پا. یا کسی زکر نشده سر و پا اصلا تو آیه تهمون نیامده هم بگیم بگیم آیه تهمون هم آیه مطلق از این جهر هم داشتیم برای آیه حضور بگیم هم سورت و هم دست رو محس کنم بعدا سر و پا رو محس کنم دقیق بکنیم منتظرون ایچی بخار بگیم یعنی چیزی که اصلا نیامده یک لفه یک ذات که آمده با یک سفر ما باب مطلق و محید اونجایی که که که اون سفر رو دستگاهی بکنیم اما چیزی که اصلا نیامده بود باب باب مطلق و محید نیم تا درسته در آیه وضوع بعد از وجه و رکسیده سر و پا هم ذکر شده در آیه تما از فرما پذیرک نشده بیایم بگیم چون در اینجا جزء ذک نشده، از باب هم له مطلق و بعد از مسح سر و از مسح دست، مسح رأس و مسح پا هم میکنه. از کیاس هم مراتع است. از کیاس؟ حالا کیم مطلب واضحه اینا که بیایم از و بازار ایشون موقع دیگه که ما اصلا دیده دقیق بکنیم حمل مطلق برمقید در جایی که ذات صفتی داره در یک دلیل آمده اون صفت در یک دلیل نیامده اما اگر در این دلیل اصلا مطلی کلن هست دلیلی که اصلا نیست نه ذاتن نه صفتن اثبات اون ذات رو به عنوان حمل مطلق بر مقید نمیشونیم بکنیم بگیم آقا بعد مسحه صورت و مسحیت مثل سر و پا هم گفتونی چون تو آیه وزو آوره این فهم هم در مطلق و مقید میستقض می کنی اینجور فهم مثلا شم درست هست مثلا سهیل یارو به ازاشوشی گفت کس طریقه باشه این مثلا گفته باشه مثلا رقبه در کفاره زهار و در کفاره غد در یکی مطلق در یکی مقید خب ساده همسان قبول نکردیم ما آده فرس و سلم. اما در کفاری زهار بعد از بعده اتحان آمده در کفاری قط اصلا اتحان نگه آمده بیاریم بگیم اینجا رو حمله مطلب برمقید میکنیم آیه قطعه رو حمل میکنیم بر آیه زهار بگیم اگر اتخی نشد اتحان رو میکنه برمیستر اینه که این اصلا حمله موقعید نیست قیاد هم نیست از قیاد هم, هم بستر چه نقصه به نظه ها به خرم این بار بکنه این بعد نصالهای دیگری بله ایشان در اینجا زده تا حالا من دیگه بار بحث نمیشم و بعد ارض یکی از موارئ شرطهایی که ایشون داره این مسئله است که در اینجا باشه یعنی شرط اول اسما اون رو که واضح‌تر متعرض میشه دقیقاً نام خودشون شرط از که شرط چی اون علیا ایشونو ملاحظه که مطلقا مطلق ماهیت یعنی حیثیت هییت یعنی از هریا. شرط سومی ایشون اونجا شرط سوم من فعلا دوم میخونم ان یکون فی باقل عوامر ولی اثبات و اما فی جانب النفی و نفی کلا فعل نحو لا یزم من الاخلاب لفظ مطلق مع تناول نه و هو غیر و این نکته‌ای که اینجا میشونه البته باز هم میشون گفته که بعضی‌ها گفتن نه در اینجا هم جاری میشه حالا این نکش اینه مثالش مثلا اگر گفت که لا تعتق مکاتب عبد مکاتب از این که بر آزاد با مولاش نماز پول بده آزاد بشه قراردادی حالا به نغذاری که پول میده یا آخر سر آزاد میشه اگر گفت لا توتر مکاتبه بعد گفت لا توتر مکاتبه کافره آیا اینجا حمله مطلق برمعید میشه گفتن نه نمیشه چون لا کافرن کافره مکاتبه مطلقه همه اموال مکاتبه رو میگیره. اون لا توتر مکاتبه کافره نمیتونه به عنوان قید باشه. چون اینا به ذهنشون رسیده که مطلق مقید بود یک چیزی باشه که تنافی داشته باشه یک نوع تنافی با مطلق داشته باشه اینجا تنافی نداره یعنی دیگه مطلقاً جایز نیست که مکاتب را چون مکاتب را از پولش داده مکاتب رو آزاد بکنه اما نسبت به مکاتب کافر تأکید داره یا مثلا از باب تأکیده چون شاید به ذهن انسان بیاد که مکاتب مؤمن نشه آزاد کرد. مکاتب کافر نشه آزاد کرد. در اینجا این, این تحذر حمل به هر دو معنا نداره چون لاتوبه یعنی به عبارت این بیشتر سر رو این میدونه آن بیانه انشاءالله سر حمل مطلق و مقید این از که اگر عمل کردیم به مقید به مطلق هم عمل شده ولا حکس نه, نه. درش میتین یه جون تقییده و نمیشه به هر دور به هر نه این همیشه در کلمات اینا اون وحدت محضوب اینا بعد ارزو کنن یعنی اگر... اینا سر این میدونن که اگر گفت اعتق رقبتن اعتق رقبتن المؤمنه شما رقبه المؤمنه آزاد کردین هم به مطرق عمل کردین هم به مقلیه این کافتن موردش نخی نهت یه نخی قسط مقادم کافه <تصفيق> خب پس بده مخاطب مؤمن آزاد کافر عمل نکرده هم اگر هم بکنیم بو عمل نکند اونا نکته رو این میدونن که اگر شما آمدین حمل مصرح و مقیّد کردین و هر دو عمل کردین اعتقاداً غلطان اعتقاداً غلطان مؤمنه شما رغبه مؤمنه آزاد کردین هم به عطق رقضاتاً عمل زندی میشی اما اگر آمدید شما لا توصد مکاتباً رو هم می کردیم بر کافر مکاتب مؤمن آزار آزاد کردیم پس به مطلق عمل نکردیم این نکته کار این است که شما با عمل به مقید در این صورت به مطلق عمل نکردیم و از کردیم میار و ضابط این است که با عمل به مقید ما به مطلق هم عمل کردیم نکته اساسی این است که با عمل به مغایر ما به مطلب هم عمل کردیم در اینجا نداره خب به اصطلاح یکی یک از دین نپذیر باسر کرد ظاهر خب درسته همونه روایت خداوند صوت مکاتن روایت دیگه خداوند صوت مکاتن مکاتن خاص حالا ما این مثال هست اما اگر اینجور مثال باشه قاعدش که باید در اینجا چرا؟ چون اصولا در باب نفی در حقیقت اونی که چیزه بسته اونی که قدر متعبه مطلقه نه قدر متعبه مقیده در باب اثبات قدر متعبه مقیده اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه با اعتاق رقبه مؤمنه می با اعتاق رقبه مؤمنه رقب شما, رقب شما به اصطلاح هر رو عمل هرمان اما در باب منفی وقتی میگه لا تو اتق نظرش اینه که مطلق مکاتب چه مومن چه غیر, غیر مومن با آزاد نشه ها ظاهرش در اینجا محدودیت در طرف مطلقه نه در طرف مقیق پس بنابراین اگر رقبه مطلق آزاد نکرد حتی مکاتب مومن را آزاد نکرد به هر دو تکلیف عمل کرده از این لاتو ارتف مخاطران کار کردن چون موضوعش نبوده لاتو ارتف مخاطران بشه عمل کرده پس شرکش اینه یه وحش نمگذاشت داره یه بحث و فردا فردا آخه این دوره بحث دیگه انشاءالله ساره من جمع جورشون کنم